این داستان سه شاخه سبز یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون زاهدی گوشنشین بود که در کوهپایه‌ای نزدیک جنگل زندگی می‌کرد اون اوقاتش رو به نیایش و کارهای خیر میگذروند و هر روز به نشانه توبه یک سطل آب به بالای کوه می‌برد این مقدار آب روزانه باعث نشات حیوانات و تراوت گیاهان آنجا میشد چون در اون ارتفاعات مدام بادهای گرم میوزید مرغان وحشی که غالبا از آدمها دوری میکنند میآمدند دور چاله آب حلقه میزدند و منقار خودشون به درون آب فرو میبردند زاهد گوشه نشین. بیش از حد پرهیز کار و منذبی بود. برای همین همیشه یک فرشته اون رو تا قله همراهی میکرد و قدمهاش رو میشمرد. وقتی هم کار زاهد تموم میشد، فرشته به وسیله کلاقها همون غذایی رو براش فراهم میکرد که به فرمان خدا برای پیامبران می میکردند. زاهد هرچه پیر تر میشد، پرهیز کار تر میشد. روزی تصمیم گرفت از دامنه کوه پایین بیاد. چشمش از دور به محکوم می افتاد که اونو به سمت چوبه دار می بردند. زاهد با دیدن محکوم با خودش گفت آیا در حق او قضاوت ای شده است؟ همین که این کلمات بر زبانش جاری شد فرشته اونو ترک کرد و اون شب کسی براش غذا نیاورد. ترس برش داشت و هرچی فکر کرد که مرتکب چه گناهی شده هیچ چیز به خاطرش نیومد. از خوردن و نوشیدن دست کشید. زانو بر زمین زد و به دعا و نیایش پرداخت. عشقی تلخ از دیدگان زاهد سرازیر شده بود که صدای شاداب و زیبای یک پرنده توجهش جلب کرد. اون رو به پرنده فریاد زد. خوش با حالت، تو چه زیبا چه, چه میزنی؟ کاش میتونستی به من بگی چه گناهی کردم لاقل توبه میکردم و دوباره شادی به دلم راه پیدا میکرد پرنده زبان گشود و گفت تو در درستی قضاوت در مورد یک محکوم که به طرف چوبه دار می رفت شک کردی در حالی که قضاوت در ید قدرت پروردگاره تو باعث خشم خداوند شدی با وجود این اگر توبه بکنی و به گناهت اعتراف کنی خداوند تو را میبخشد. وقتی حرفهای پرنده تموم شد فرشته قبلی کنار مرد زاهد ظاهر شد شاخه ای مرده به دست او داد و گفت این شاخه رو تا زمانی که سه شاخه سبز ازش بیرون بیاد نگهدار. دار شبها موقع خوابیدن باید اونو زیر تختت بذاری. باید از یک خونه به خونه دیگه بری و از راه گدایی نون شبتو به دست بیاری. یادت باشه که در هیچ ای بیش از یک شب نمونی. این راه توبهیه که خداوند برات تعیین کرده. زاهد گوشنشین اون شاخه و برداشت و به سیر و سیاحت دنیایی پرداخت که سالها از اون جدا مونده بود. چیزی نمیخورد و نمی نوشید. مگر اون چیزهایی که مردم خیر بهش میدادند برخی از مردم از بخشیدن چیزی بهش امتنا میکردند و برخی دیگر در رو به روش باز نمیکردند. کردند بدین ترتیب بعضی روزها حتی یک تکه نان خشک هم دست زاهد نمی رسید یکی از روزها که از خانه‌ای به خانه دیگر رفته بود ولی نانی به دست نیاورده بود کسی هم حاضر نشده بود بهش پناه بده مجبور شد راه جنگل رو در پیش بگیره اون در جنگل کلبه مخروبه پیدا کرد که پیرزنی در اون زندگی میکرد زاهد به پیرزن گفت پیرزن خوب تو رو به خدا اجازه بده امشب تو این کلبه بمونم پیرزن در جواب گفت حتی اگرم بخوام نمیتونم این کارو بکنم چون من سه تا پسر دارم یکی از یکی شرتر و بی‌رحم‌تر اگر از کارهای روزانشون برگردن و تو رو اینجا ببینند هر دوی ما رو میکشند. مرز زاهد با التماس گفت اجازه بده شب اینجا بمونم اونا نمیتونن به من و تو آسیبی برسونن پیرزن دلش سوخت بهش اجازه داد وارد بشه مرد در گوشه دراز کشید و شاخه پجمارده رو زیر سرش گذاشت. وقتی پیرزن شاخه خشکی درودید، دید از راهب دربارش پرسید. مرد جواب داد بخشی از کاری که برای توبه باید انجام بده اینه که شاخه رو از خودش جدا نکنه. پیرمرد در ادامه توضیحات خودش گفت من موجب خشم خداوند شدم. وقتی محکومی به سمت چوبه دار می‌رفت، درباره درست بودن قضاوتش شک کردم. وقتی پیرزن داستان مرد زاهد و شنید به گریه افتاد و گفت: اگه خدا درباره کاری به این سادگی مجازاتی به این سنگینی در نظر بگیره، پس وقتی پسرای من در برابر خدا ظاهر بشن، چه مجازات وحشتناکی در انتظارشونه؟ نیمه های شب دوزان در حالی که عربده می کشیدند و با صدای بلند می خندیدند وارد خونه شدند و آتیش روشن کردند. وقتی شعله های آتیش زبونه کشید، چشم پسرها به پیر افتاد که در گوشه دراز کشیده بود. اونا با لحنی خشن و عصبانی از مادرشون پرسیدند این مرد کیه؟ مگه ما قدقن نکرده بودیم که کسی به این کلبه وارد نشه؟ مادر با التماس گفت اجازه بدین امشب و تو این کلبه بگذرونه اون گناه کاری بیچاره است که توبه کرده دوستو پرسیدند مگه چه گناهی مرتکب شده بعد هم رو کردند به پیر مرد و گفتند مگه چه جنایتی کردی زاهد از جای خودش بلند شد و مفصل شهر داد که چگونه با چند کلمه خداوند رو ناخشنود کرده و بعد هم با توبهی سخت مجازات شده سه برادر سخت تحت تاثیر ماجرای زاهد قرار گرفتند و از خلافکاری های به وحشت افتادند و فکر کردند که خداوند چه مجازات سختی براشون در نظر خواهد گرفت. اونا با اندوه فراوان احساس ندامت کردند. زاهد پیر سه گناه کار رو به راه راست آورده بود و بعد هم خوابش برد. او صبح روز بعد دیگه بیدار نشد چون به خوابی ابدی فرو رفته بود. اما از شاخه پشمرده زیر بالش او سه شاخه سبز رویده بود. با رویدن اون سه شاخه سبز معلوم میشد که خداوند از سر تقصیرات زاهد پیر گذشته است. کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی. نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما ام s t مهران دوستی کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی